سلام خول نشدم یه وقتای این اینجا اسباب بازی چار نیکرد اسباب بازی ملخ مرده سوسک مرده چرا باید فکر کنم کل شد همه فکر کنم ما کسو کارتیم همه نیستین من روم نمیشه به بدکی بگم پنجه هزارت من هفته بهم کم داده خب بهش بگو بگم روم نمیشه این رو دربای سیا آخرش بینتون شکراب میشه سر پول شکراب نمیشه قلالش یادش اومد اومد نه رو هم اگه تونستی، حالا سو تو, تو لفافه بهش بگو ولی نگران حنیف و چاوشم میرن، میان میشینن، پا میشن میگن بابات کارگر بابای ماست تو سرطار اثر گذاشته. باق میکنه گرگه میکنه میگم بابا کارگری که عیب نیست تازه میخوام شریک شن برگشته به میگه میشه منم مثل حنیف به سر بدر Kuidas sa mõtled? Kuidas sa mõtled? بجه چی رو بسته؟ هلی؟ چرا بجهش بسته؟ Pärtsam, et sa ajad, sõna. Pärtsam, et sa ajad, sõna. Pärtsam, et sa ajad, sõna. Pärtsam, sõna. Pärtsam, sõna. Pärtsam, sõna. Pärtsam, sõna. Pärtsam, پس خونده باش بشین خونده باش مادن چشم میشینم انقدر هیا داری؟ بچه داری؟ ایالواری چرا به عنوان خاصگار تو خونه پدر من پا گذاشتی؟ پچه جیر زنده باشی بینده من اصلا نهیه حفظه نمیخوره بشین و همینو یه بار دیگه تو چشهای من تکرار کن بشین میفهمم چیونگین خوانده هاش اومد چشم میشینم چشم چشاتو نگاه میکنم چشم همینه یه بار دیگرم میگم چشم سلام خوانده کاسب حرف آخر همون اول میزنه ولی من واسه بقیه کاسبم واسه تو داداشم سایه سرم اعتمادم سربلندیتم من میگم نه به محتابم میگم نه حالا اون بچه کی بود و از کجا اومده میگم حنیف نه حنیف ممکنه به دیگرم دروغ بگه زیر رو بکشه زبونش تون باشه دستش بزن باشه ولی واسه من واسه شما شکولات هم کنه داشت ام کنیم خونده دش بشین چشم امزه دش رفیقم بود بچه رفیقم خودون رفیقت احسان بوچیک میشناسمش خوشحال باشم؟ گفتم فقط میشناسمش این احسان دست نداره که بچهش خودش ببره دستشویی؟ چرا دستوره پا نداره آره پا نداره این پاش دو تست دفت رفت این مرفت رو سر بزنم بهشون بچهش چیز بود گفت چیش دارم گفت دستشویی دارم منم بردمش دستشویی همین همین دیگه همین تا شد رفت تا شد رفت تو در رفتی در من نه آره نه سلامی نه خدافزی زندش من من مودلم اینجوریه مودلت اینطوریه که سلام علیک نکنی من خونده داشت نواشه کلن از کجالت آب میشم نمیدونم چرا حس میکنم امشب همه چیز با دروغ قرقاتیه نیست نیست منچا باش بله پس جسارتاً اگه فرد و وقت دارید بریم محضر برای عقد با خوهرم محضر محضر داریم یقد ساده بی سر و صدا عیبی داره عیب نه عیبی نداره, نداره. دون از جونتون یعنی دور از جون خواهرتون که عزیزه رو دست که نموندن همی طوری بی سرسله آخری مکاری بکنیم فردا محذر محتاب تموم چا یعنی چی محتاب رفیقش هست پسرش هست بوتیکش هم هست میری میبینی معنی نداره بودو بودو بریم واسه عقد حالا دایی یه بر خانواده خودت چی هنی راست میگه رو دست که نموندن همی طوری هل, هل هلکی تو هر نزن چشمانش شب عروسی منو تو ماشین عروسی یادت میاد همون چه ربچی داره خانم. ولی یه هستی اومد سراغم حسامو بهت گفتم ترسمو بهت گفتم یادته یادته چا باش یه هستی به دلم افتاد که هیچ وقت بچه دار نمیشی خانداش با بشین هیا نکن خجالت نکش هیا کردن فقط چشم بستن نیست گوش بستن نیست ترک مجرس زن و شواری نیست بشین پس خوش ندارم با داداشم اینطوری صحبت کنیم بعد حرف نزد زنداش خانم من خودم گفتم هم کنه پریشب تو آشپزخونه ازت پرسیدم از اختلافتون از کریم بوستان از مالش گفتی نچونه تو این دعوه سر جاش این د ولی همون لحظه یه حسی بهم به گفتداری جونم و دروغ قصر میخوری. این دوتا. یه حسی داره بهم به میگه دروغ حرف میزنی حنیف. این سه تا. از خجر جواب بده. جواب من یه حجره رو؟ حجره رو جواب بده. قرار عقد تو این هفته. بعد از دیدن دوست بوتیک داره تو پسرش بوتیک تو رو بچش. آلو. چیه؟ چرا پس که آواد بیاد که ضربان قلبش بشه دیویست تو دیگه چرا از تو بعیده حنیفی، ستاری چاباشی تو درس خونه این مملکتی میزنیم ای خوریا ها گذاشتم واسه حق از تو گذاشتم واسه حق واسه دعوانه شدن واسه رفت سور تفاهم واسه سل تا رفته تابله ساخته اسم چاوش رو گرفته این بود قرارمون به وقتش بدتر حنیفه بدتر یکم از خوبیات بگو تو بگو از خودم بگم یا از تو بگم که راف داده هی میگی میگی که از لیلا گذاشتم. از کجا معلوم که لیلا از تو نگذشته الان دعوه سر اینه باشه ایبش چیه ایبش نیست این ساعت شب پا شده اومدی اینجا دعوا سر خودم سر همچین چیزه کچیکی نیست اصد خفم کرده تو لگیم بوده راست رفتم گفتن آراز شب رفتم گفتن آراز حالا این آراز لیلا رو فدای چی کرده داداشش خوب کرده دعوه خوب کرده پیران اومدم اومدن به خودم گفتم که گذشتم ازت گذشتم از چی؟ تحفه ای اصلا گذشتی تو گذشتی تو گذشتی دعوا نشده؟ نشده؟ اون ابروی شکسته چی میگه؟ میگه دعوا نمیگه؟ نذار چابوش بفهمه نذار صوت بشکنه چه باندش جوشش بده همه فنحریف تعریف دلش نیست بلی باید حریفی شه نه هر خانواده یه قربونی لازم این در درگانش دوار گردن اقل کلمن اصلا عرف شبه وینادارم او اقو من که کاری باش در اشنام تا که جاید بودی. چکار داشتی بکردیم اما این تابلو رو عوض کردیم بار بدی که نکردین که خونه داداشمه خونه داداشمه بیرو بیرو یلا برو بیرو نگو برو بیرو برو بیرو علی بردار برو بیرو یلا خونه داداشمه یعنی چند بار گفتی ولی بعد نگفتم چرا کلای باباتو برداشتم برای اینکه داداشم فعلگی کسی رو نکنن خونهشون رو نبینم دستایی چوروک خورده و پینه بستشون رو نبینم ولی حالا اینو دارم میبینم برای بیرون از دونگ آقام برم بیرون دونگی به جانه بیرون برم بیرون حرف سدم و بشن. بلن بلن بزن برم برم بزن پشمون میشی امکانش هست. بیرون تو کار به دادگاه میکشنم؟ اونمدادش تا احسار میکنن که شهادت بده. نداره. باد قسم بخوره. قرآن قسم بخوره اونم اپنه آراز چه کنم برم بیرون شو بیرون نکمت دست تو باید بگیری بالا بذاری رو قرآن قسم بخوری که راستشو میگیم شایدم دوست داری به قرآن قسم دروغ بخوری سطر چه بسطه تا اینجا چه کار بیکنیم اینا. اینا آقای داره همسایه ها این بریا اون بریا بیان اینجا دادش بس کن طرف بیان اینجا من سطرم به سر کریم بوستان بابا رو خبر کردم ما میفهمیم امتونم چه آباشو میشنسیم از دعوای ما هم خبر داریم از حق و ناحق هم خبر داریم. بسته چیه تفصیل تلفون بری ها بری بابا بهشو داده من ندادم اینجا یه شاهد است بگم یا نگم تابلو رو بزنم یا نزنم من الان آراز و قسم میدم به قرآن هممونم وای میسیم منتظر ببینیم جوابش چیه آراز پسر حاج حاجبدین اخیی تو رو به قرآن قسم بابای من سهمی از این حجره داره یا نداره داداش تو حق بابای منو خورده یا نخورده دستخط بابا تو با مهر و امزاشو سوزونده یا نسوزنده ها همینجا جواب بده همون قسمی که رو زبونت هست و جواب بده خلاس می میدیگه بگو یا قسم راست میخوری قرآن پشت و پناهت میشه یا قسم دروغ میخوری و... دیگه نگم ددش ددش از پشت ددش نامر Oma mõttedeks ma venin Sai salaoda kel on God Mõni teine. Oh, jumala <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> خوبی درد درد داری درد داری درد, داری؟ درد, درد, داری؟ درد, درد میکشد درد سبول لگی چپش در را بچه خود تنبود آبام سو جایدی سوزمی کرد تو چمرش بخشی تو این اینجا باید بری بیرون میره نمیرم میری حنیف دیدم که زدیش لیلا های داشت کمکش کن صبح <تصفيق> بیان صبح آروم آروم بیامش آروم بیامش آروم بیامش آروم بیامش میمون بهتر نبود نبود برسونش کننش نمیذارم تنها <تصفح> بریم <مسلم> ایجون لازم نکرده تو هر کاری که شاخشونه کشینم داره خورت دخالت بدی آخ خدا اون صحته رو بیمروبت شد. صدادری که و... اون بیمروبته؟ هی، بهتر بیا. هی چی انیف؟ دور سر بزن. فقط 3 سانتیم برتر بود، قطع نشه می اون وقت کاسه چیکار کنی؟ آقا شاور. حالا که 3 سانتیم برتر نخورده که لیلا. به نظر چاغوکشه شانس آورده یاروس. بچین لالاخور. بچین برید. دم خونه ترمز میزنی آراس بیاده‌ میشه میره تو. اگر نرف بهم زنگ می‌زنی. میام تو خونه قفل زنجیرش می‌کنم. ملتفت چوری چی گفتم یادن؟ بوشین. بایی بری اون لجن مشخصات لجن چیه که به من نسبتش میدی اولیش از پشت زدنه ها هم و که از پشت بزنه لجنه آره هنیف آره آره داداش آره آره دیگه بشین بارو بشین بارو موازه باشین خروم بارو داداش بشین بارو بشین داداش بشین بشین آره بشت پا با زمش آروم بشه آروم آروم الو چرین موسان قجره من اومدم خوبی موسادری گول می رو برستان چاقو میکشی هشه شیربانی آتیش میزنی الانم که کاشف بهمد اومده بچه داری ندارم داشت نداری با دروغ خودتو لجن نکن ده من خودم مزخرفاتو گذاشتم تو جهن جنه مهتاب اکان راستازی باورت شده منو سیاه میکنی برم میکی چشمت میری پشترم شدن تخته میندازی زنه کیه بچه یکیه شمرده شمورده تو هر جملت سه تا قلط کردم یاری حرف میزنی؟ موضوع تو کار نیست خونده داشت عنیف به من دو رو گفتن یه چیزه دوبار گفتن چه چیزه دیگه چشم رو میبندم باز که کردم همه گفتن یارو میگی؟ چشاتو بازی کو خونده داشی دمبالام من نیست فロス گفتم ولی مادرش تن عقدیه Ja sa me sina, ma olen jo. Ja te loodan, et ma olen jo. Aga ma olen jo, ma olen jo. Ma olen jo. Ma olen jo. Mida me oleme nabaadunud, et keegi ei saa meid hoiab, et me saaksime kooda jääda? Me ei tea, et me saaksime. Me ei saa meid hoiab, me ei saa meid hoiab, me ei saa meid hoiab. Me ei saa meid hoiab. Me ei saa meid hoiab. Me ei Olafuruna rikkseibur. Ma ei tea, kas sa ei ole meid agressiivsed, aga ma olen meid agressiivsed. Ma ei tea, kas sa oled agressiivsed, aga ma Ma ei قلنم خوندو داشت چشم امیدم به دعای خیر شما سه بلان شو دران هم از من زخمیه خدا بخشش مندازه به کلوش اگه ننداخ تو هم بهش اضافه شده چیه این سکو با موسکو فراجی خونده داشت چرا موسکرف مگی؟ کدوم سکو اومدی خونه بابای مهداب؟ عمر شما بود خونده داشت گفت چه میخوام غلامیتونو بکنم؟ عمر شما بود خونده گفتم تاریخ عقد تنگ کنیم عمر شما بود خاندهش هر رفور و شمسی کوره در و همسایی و فکر و فامی همه فهمیدن لفظ اومدم گفتم چهابوش با تمام اعتبار و داراییش پشت دارشش حنیفه لطف شما بود لطف بگو عمر خانده داشت عمر خانده داشت طلاقش میدی همشه بینی می محصر نرگس رو حق میکنی تا هیچ حرف و حدیثی پشت این خانواده محترم نباشه این زن چی اسمش من اینجاست چیه میرم طلاقش میدیم از آب خوردن بعدش میشی همون خواستگار خوهر زن من با میشون میدیم این چیه؟ احسان بوتیکه احسان بوتیک بچه من میاری یکی هم همه روکتی که واسه محتاب تعریف کردی میاری اونجا تو محتاب بیاد ببینه باور کنه حالا کی میاد من نمیدونم تو کی میفهمی من نمیدونم تا اون کاری که گفتم رو میکنی آینده تو نرگسه خانوادی خوب پولدار سرشناس آشپله ترقی ورد بدبخت پلا رو تا یکی میری بالا با این ازدواج میری بالا دریافت هسل شد سیاباز نشیدم بله بله هسل شد بله چی شد هسل اول طلاق نبینمت میدون بدون برگ طلاق هر چیزی که چاوش گفت خوش کنم چرا آرایتا با چاوزدین؟ باست از سوزو قسمو دروگ به قرآن گفت قرآن میزد به کمرش لاستشو میگفت چاوش که جالک میکشه زایه میشه زدم که شلوک شه به بچه ها گفتم اون کف حجده رو بشورد با چی شستم آقا کریم هستم یادم دادم حق گرفتن با همون دل و جرعتی که بلدم از مال دنیا بگذارم خدا چراه میتونم با حق از صحب و حقم میگذرم اگه بدونم پسر بردیری خواه تو دارگاه قصد دروغ بخوره خون کریخت کمو زیاد نداره ریخته اون ریخترم با آب نمیشورن با خون میشورن تنها میمان با تو آرامم بی ترس از تنهایی تنها ایمانم آشغتر زخمیتر smoke us